رحای از زن ور شما از تماشا ذهن چیست؟ وقتی کسی نزد پزشک می رود و میگوید من صدایی در سرم می شنوم؟ بیتردید آن پزشک او را به یک روان پزشک معرفی می کند. واقعیت آن است که تقریبا همه آدمها همیشه صدا یا صداهایی در سر خود میشنند. روند بی اختیار فکر، که نمیدانی توان آن را داری که متوقفش کنی مدام در فکر با خود حرف میزنی. حتما در خیابان با آدم های دیوانه برخورد که مدام با خودشان حرف میزنند. خب وضعیت آنها با وضعیت تو و بسیاری از آدم های نرمال دیگر هیچ تفاوتی ندارد تنها تفاوت تو با آنها این است که آنها بلند بلند حرف میزنند. و تو یواش و آهسته این صدا در سر تو تفسیر میکند نظریه میدهد بضاوت میکند مقایسه میکند شکایت میکند خوشش میآید بدش میآید و غیره این صدا لزوما به وضعیتی که تو اکنون در آن به سر میبری مربوط نمیشود ممکن است این صدا زنده شدن خاطرات نزدیک یا دور گذشته و یا مرور کردن و خیالورزی درباره وضعیت وضعیتهای ممکن آینده باشد. صدایی که تنین اشتباهات روخ داده و یا نتایج منفی پیش رو را دارد. این حالت را نگرانی یا دقدقه می نامند. این موسیقی مرد گاهی با تصویرها و فیلمهای ذهنی نیز همراه می شود. حتی اگر این صدا به وضعیت کنونی تونیز مربوط باشد، باز وضعیت کنونی تو را بر مبنای گذشته تفسیر می کند. زیرا این صدا به ذهن شرطی شده ی تو تعلق دارد. ذهنی که حاصل تاریخ گذشته ی تو به علاوه ی فکری موروسی توست. است. بنابراین، تو حال حاضر را از خلال چشمهای گذشته میبینی و در نتیجه امور را تماما تحریف شده مشاهده میکنی این صدا دشمن اصلی توست باید هم باشد هستند کسانی که با یک تومور در مغزشان زندگی میکنند توموری که مدام به آنها حمله میکند رنجشان میدهد و انرژی حیاتیشان را مکد این از سبب بدبختی و اندوه و بیماری بیشمار آدمها. خبر خوش آن است که تو می توانی از ذهن و ذهنیت خود رها شوی رهایی از ذهن تنها رهایی حقیقی زندگی است گام نخوص را همین حالا بردار شروع کن به گوش دادن به صدایی که در سر توست توجه ویژه ای را به الگوهای فکری یک نواخت خود معتوف کن همان نوارهایی که سالهاست در ذهن تو مدام تکرار می میشوند منظور من از تماشای آنچه که مدام فکر میکند همین است یعنی به صدایی که در سرداری گوش بده به مصابع حضوری مشاهده کننده آنجا باش باش هنگام گوش دادن به آن صدا بیطرف باش یعنی قضاوت نکن آنچرا که می مورد قضاوت و یا سرزنش قرار نده. قضاوت و سرزنش تو به این معناست که آن صدا دوباره از در پشتی وارد شده است. به زودی متوجه میشوی که صدای آنجاست و من اینجا هستم و دارم با آن صدا گوش می دهم. آن صدا را مشاهده می کنم. در که این من هستم این احساس حضور خود دیگر فکر نیست. چیزی است که از ورای ذهن تو برخاسته. است. بنابراین وقتی به فکر گوش می دهی، نه تنها نسبت به فکر خود شیار میشوی بلکه نسبت به خودت هم به عنوان شاهد فکر خود آگاه میشید. بعد تازه آگاهی وارد زندگی تو می شود. آنگاه که به فکر خود گوش می دهی، حضور آگاه خود را احساس می کنی. خیشتن جرف تو که آنسو و یا زیر لایه فکر پنهان است بدین سان فکر سلطه خود را بر تو از دست می‌دهد و به سرعت رنگ می‌بازد زیرا تو دیگر ذهن را با توهم یگانگی با آن تقضیه نمی‌کنی این آغاز پایان یافتن فکر ناخواسته و اجباری است وقتی فکر فروکش می‌کند تو گسستی را در جریان ذهنی خود تجربه می کنی، شکاف بی ذهنی را در ابتدا این شکاف کوتاه است شاید چند ثانیه اما به تدریج طولانیتر خواهد شد هنگامی که این شکاف ها به وجود می آیند، در درون تو احساسی از سکون و آرامش به وجود میآید. این احساس آغاز حالت طبیعی احساس یگانگی تو با هستی است این احساس همان چیزی است که ذهن آن را مخفی کرد. با تمرین احساس سکون و آرامش تو ژرفتر خواهد شد در واقع جرفای این احساس تو پایانی ندارد در ضمن احساس خواهی کرد که چشمی از شادمانی در اعماق وجود تو باز شده است شادمانی هستی احساس مذکور چیزی شبیه خلصه نیست اصلا در این احساس آگاهی از بین نمی رود. آگاهی تقویت می شود اگر بهای آرامش کم شدن آگاهی تو بود و اگر بهای سکون سرزندگی و هشیاری تو بود آنگاه آرامش و سکون ارزشی نمی داشتند در این حالت اتصال درونی به همه چیز و همه کس تو آگاهتر بیدارتر از زمانی خواهی بود که خود را با ذهن خیش یکی میپنداشتی این احساس همچنین میدانی از انرژی پیرامون تو ایجاد میکند که به بدن تو نشاط و شادابی میبخشد هرچه بیشتر به اعماق حالت بی ذهنی فرو می روی حالت آگاهی ناب را بیشتر درک میکنی زیرا این تن نیست که قبار چهره جان می شود بلکه ذهن است. جان در شعر حافظ همان آگاهی ناب است. در حالت آگاهی ناب حضور خود را با چنان شدت و وجدی احساس می کنی که در مقایسه با این حالت فکر، عواطف، تن و همه دنیای بیرونی خرد و کوچک جلوه می کنند. حالت آگاهی ناب حالتی خداگاهانه نیست بلکه حالت بیخودی است آگاهی ناب تو را به فراسوی چیزی میبرد که زمانی گمان میکردی خود حقیقی توست این احساس حضور است که خود حقیقی توست و نیز چیزی است بزرگ بزرگتر از تو آنچرا که میخواهم بگویم ظاهرا حرفی است متناقض اما برای توضیح این نکته راه دیگری نمی شناسن به جای تماشای فکر کننده درون، می توانی با معطوف کردن توجه خود به لحظه اکنون شکافی را در جریان ذهن ایجاد کنی فقط با تمام وجود متوجه لحظه اکنون باش این کاریست بسیار لذت بخش به این شیبه تا آگاهی خود را از فعالیت های ذهن جدا می کنی و شکاف بی ذهنی را ایجاد می کنی شکافی که در آن بدون واسطی فکر به شدت هوشیار و بیدار میشوی حقیقت مراقبه همین است. در زندگی روزانه می توانی یکی از کارهای روزمرت را که به عنوان وسیلهای برای رسیدن به هدفی آن را انجام می دهی در نظر بگیری و تمام توجه خود را به آن معطوف کنی چنانکه که این کار فی نفسه هدف شود. نه وسیله برای مثال هرگاه از پله های خانه یا محل کار خود بالا و پایین میروی به هر گامی که بر میداری توجه کن به هر جنبشی که در اندام تو ایجاد می شود توجه کن، حتی به تنفس خود توجه کن. کاملا در بالا و پایین رفتن خود حضور داشته باش. یا وقتی که داری دستهایت را میشویی، متوجه احساساتی باش، که در دستان تو و نیز در کل اندام تو ایجاد می شود. شنیدن صدای آب، احساس ریخت شدن آب روی دست ها، جنبش دست ها، رایهه و غیره. یا وقتی که سوار ماشین خود می‌شوی بعد از آن که در ماشین را می‌بندی چند لحظه مکس کن و جریان نفسهای خود را احساس کن. نسبت به سکوت و احساس قدرتمند حضور خود آگاه باش معیاری وجود دارد که می توانی میزان موفقیت خود را با آن بسنجی معیار میزان آرامشی است که در درون خیش احساس میکنی بنابراین مهمترین گام تو به سوی روشن شدگی این است یاد بگیر که چگونه خود را با ذهن خیش یکی نگیری هر وقت که شکافی در جریان ذهن خیش ایجاد می کنی نور آگاهی تو شدیدتر تر می تابد. ممکن است روزی برسد که به صدای سر خود بخندی همانطور که گاهی به لوس بازی های یک بچه می خندی این خنده به معنای آن است که تو دیگر ذهن خود را خیلی جدی نمی گیری زیرا احساسی که از خیشتن حقیقی خیش داری وابسته به ذهن تو نیست روشن شدگی، فراتر رفتن از فکر آیا فکر برای بقا در این جهان ضروری نیست؟ ذهن تو ابزار است، وسیله است ذهن هست تا تو آن را برای کارهای خاص به کار بگیری و وقتی کار خود را انجام دادی آن را زمین بگذاری باید بگویم هشتاد تا 90 درصد های مردم نه تنها ملالاور و بیهوده؟ بلکه آسیبرسان هم هستند ذهن خیش را مشاهده کن تا حقیقت این حرف را ببینی فکر تو موجب نعشت کردن و هدر رفتن انرژی حیاتی تو می شود این نوع فکر ناخواسته در واقع اعتیاد توست اعتیاد یعنی چه؟ اعتیاد یعنی چیزی که تو نمی توانی متوقفش کنی یعنی چیزی که ظاهرا از تو قویتر است چیزی که در ضمن به تو احساس دروغین لذت هم میدهد لذتی که سرانجام به درد منتهی میشود چرا به فکر معتاد میشویم زیرا تو خود را با فکر خود یگانه میپنداری یعنی از محتوا و فعالیت های ذهنی خویش تصویری از خود میسازی زیرا باور کرده ای که اگر فکر تو متوقف شود دیگر خود تو نیز نخواهی بود همینطور که بزرگ میشوی تصویری ذهنی از خود میسازی تصویری مبتنی بر شرایط فردی و اجتماعی خود میتوانیم این خود شبهوار را نفس بنامیم نفس زادی ذهن است و از فکر مدام تو تقضیه می میکند اصطلاح نفس برای آدم های گناگون معناهای گوناگون دارد. اما من آن را به معنای خود دروغین می گیرم. خود دروغینی که حاصل یگان پنداشتن ناآگاهانی خود با محتوای ذهن خود است. نفس به لحظه حال اهمیتی نمی دهد. نفس فقط گذشته و آینده را جدی می گیرد. این وارونه انگاشتن حقیقت توسط نفس دلیل کارکرد غلط ذهن است نفس همیشه متوجه زنده نگه داشتن گذشته است زیرا بدون گذشته تو چه کسی هستی نفس مدام خود را به آینده فرافکنی می کند تا بقای خود را تضمین کند و بدین سان با یافتن چیزی در آینده خود را تسکین دهد نفس میگوید بالاخره یک روز هنگامی که این اتفاق و یا آن اتفاق بیفتد، وضعم درست خواهد شد خوشبخت خواهم شد آرامش خواهم یافت حتی زمانی که نفس به لحظه حال میپردازد لحظه حال را نمیجوید لحظه حال را بد میفهمد زیرا از دریچه چشمان گذشته به لحظه حال نگاه میکند یا اینکه که لحظه حال را به وسیلهای برای رسیدن به هدفی فرو میکاهد، هدفی که همباره در آینده ساخته و پرداخته ذهن قرار دارد. ذهن خود را مشاهده کن تا این عمل کرد را ببینی. کلید رهایی در لحظه حال است. اما تا هنگامی که تو ذهن خود هستی نمیتوانی توانی لحظه حال را پیدا کنی. من نمیخواهم توان تحلیل کردن و تمیز دادن خود را از دست بدهم برایم مهم نیست که یاد بگیرم چگونه شفافتر و متمرکزتر فکر کنم من نمی خواهم ذهن خود را از دست بدهم محبت فکر پربهاترین است که ما داریم بدون آن ما به سطح حیوانات پایین میاییم سلطه زه چیزی نیست مگر مرتبهی از سیر تکامل آگاهی ما لازم است گامی فراتر بگذاریم و به مرتبه بالاتر آگاهی برسیم. در غیر این صورت توسط ذهن ویران می ذهنی که به یک حیولا تبدیل شده است. بعداً درباره این موضوع به تفصیل سخن خواهم گفت. فکر کردن و آگاهی هم معنا نیستند. فکر کردن جنبه کوچکی از قلم رو به وسیع آگاهی ماست. فکر نمی‌تواند بدون قلم رو به وسیع آگاهی ما، وجود داشته باشد اما آگاهی ما محتاج فکر کردن نیست روشن شدگی یعنی رفتن به فراسوی فکر نه افتادن به سطحی نازلتر از سطح فکر سطح حیوانات و گیاهان در روشن شدگی تو هنگام ضرورت از فکر و ذهن خود استفاده می کنی. اما به شیوهی مؤثرتر و متمرکزتر از سابق از فکر برای هدفهای عملی استفاده خواهی کرد اما هرگز اسیر گفتگوی ناخاستی درونی نخواهی شد. در درون تو آرامشی ژرف برقرار خواهد شد. وقتی تو از ذهن خیش استفاده می کنی به ویژه هنگامی که به راه حلی خلاق نیاز داری تو هر چند دقیقه یک بار بین فکر و آرامش ژرف درون خیش رفت آمد می کنی. بین ذهن و بی ذهنی. بی ذهنی آگاهی بدون واسطه ی فکر است فقط در این صورت است که می توانی فکر کنی زیرا تنها در این صورت است که فکر قدرت حقیقی خیش را باز می آبد. فکر تنها هنگامی که به قلمرو بیکرانه آگاهی متصل نیست باری بر دوش روح می شود دیوانه می شود ویرانگر می شود به همین دلیل مولانا در کتاب عظیم مصنوی خود گفته است قطره دانش که بخشی دیز پیش متصل گردان به دریاهای خیش دریاهای خداوند قلمرو بیکرانه آگاهی ناب است آگاهی ورای فکر ذهن ماشینی است برای بقا حمله کردن و دفاع کردن از خود در مواجهه با های دیگر جمع کردن، انبار کردن و تحلیل و تجزیه کردن اطلاعات اینها کارهایی است که از عهده ذهن برمی‌آید. اما این کارها به هیچ وجه خلاقه نیستند. همه هنرمندان دانسته یا نادانسته از منبع بی ذهنی الهام می‌گیرند و میآفرینند از سرچشمی آرامش ژرف درون آنگاه ذهن به بصیرت خلاق درون صورت خارجی میبخشد. حتی دانشمندان برجسته نیز گفتند که کشفهای شگفت آنها حاصل غرق شدنشان در آرامش ژرف درون بوده است. در تحقیقی که از دانشمندان و ریاضیدانان بزرگ دنیا از جملنیشتن به عمل آمده است، نشان میدهد که فکر کردن، نقشی جزئی و فرعی در اکتشافات و خلاقیت های علمی آنها داشته است بنابراین عدم خلاقیت بسیاری از دانشمندان آن نیست که آنها چگونه از فکر خود استفاده کنند بلکه آنها نمی‌دانند چگونه فکر خود را متوقف کنند معجزه زندگی بر روی خاک حاصل ذهن یا فکر نبوده است حیات را حقیقتی برای ذهن و فکر حفظ کرده و میکند آگاهی وجود دارد که بسیار بزرگتر از ذهن است ذهن میتواند به خدمت چیزی بزرگتر از خود درآید